من و پدرت علا رغم جمیع مسائب ماندیم با همان شعارهای دست و پاگیر زندگی کردیم هرگز قدمی کجبر نداشتیم برای تو خواهرت همشناسنامه بی نقص گرفتیم زندگی من را به گونه ای که حسرت همه شپه فکران را برمی ساختیم و آن مرده که در مانده بعد از آنکه زنش را از دست داد چرا که زنش به جنون سفر به آمریکا دچار شد و رفت و بعد از آنکه بچههایش را از دست داد چرا که بچه هایش از شدت بی هدفی و آوارگی روحی و بی اعتقادی گرفتار جنون شدند و کارشان به تیمارستان و خودکشی کشید خودش خیلی زود تر از زمان طبیعی خفت و دیگر بر نخواست. او شاعری بود که می توانست شعرهای ماندگار بگوید و تنه به تنه بزرگترین شاعران سرزمین ما بساید اما نمیشود نمیشود که با چیزی که به آن اعتقاد نداری کنار بیایی و باز هم کسی باشی آبرومند باشی شریف باشی چیزی باشی میفهمی حالا برو به کارهای روز جمعت برس مادر میگوید روز جمعه اوقاتتان را تلخ نکنید نمایتان را بگیرید شاید چیزی برای دیدن داشته باشد. من میگویم مادر را باش و میروم پی کارم. پناه بر خدا. نگاه کن که برای جمعه هامان چقدر کار انبار شده. انگار در تمام هفته هیچ دستی به سر و روی این خانه نکشیده ایم. بچه ها هم مام مفصلشان را جمعه ها میروند. تمام کارهای عقب افتاده مدرسه یا دانشگده را جمعه ها انجام می دهند. شستن لباس ها، پرده های کتانی، رومیزی کف سراچه، دستشویی‌ها یک لحظه هم استراحت نداریم. تازه، گل هم باید درست کنیم برای چند طرح تازه. سه روز است نرسیده ساز بزنیم. در لابلای همه خردکاری ها صدای دف می‌آید. به چهارده نفر هر یک به دلیلی تلفن می کنیم، سه نامه می نویسیم، این کار را البته آذری می کند که عاشق نامه نوشتن است. دخترم می گوید روزهای جمعه انقدر کار گرفتاری هست که دیگر جایی برای شعارهای آشغانه باقی نمی ماند. اصل که پیوسته مراقب است از بچه ها زخمی نخورد که بی جواب بماند باز به سراچه می آید. تمام شعارهای عاشقانه می تواند در عوض کردن آب آن گلدان گل و دورانداختن شاخه های پلاسیده و خشک شده تجلی کند و اتو کردن یک دستمال و گرفتن سوراخ یک جوراب و دوختن یک دگمه و باز شنیدن سمفونی نهم بتوون و چهار فصل ویوالدی و ترانی از شهرام یا نوری و واکس زدن یک جفت کفش و برقنداختن آینه ها و عوض کردن چراغ سوخته دستشویی و نهادن شمعی در آن شمدان سفال که تازه ساخته ایم و باز کردن راه فاضلاب ظرفشویی و پاک کردن شیشه روی پردههای آب رنگ و عوض کردن صابون کوچک شده دستشویی با یک سابون بزرگ و دان ریختن برای گنجشکها قمریها، کبوترها و حتی کلاغ‌ها و آهسته و با حوصله عوض کردن آب ماهی ها که ده ماه است در آن تنگ کوچک زنده ماندهاند. ولی اگر عصر سری به آن خانه کودکان روشندل بزنی و برایشان با صدای قشنگت یکی دو قصه بخانی و به سؤالهایشان جواب بدهی و با مهربانی چهرهایشان را ببوسی و سرهایشان را شانه کنی و یا با ما به خانه سالمندان زردبند بند بیایی و پای درد دل چند پیرزن و پیرمرد بنشینی و چیزهایی را که میخواهند برایشان فراهم کنی آن وقت میفهمی که در روزهای جمعه چه جای عظیمی برای شعارهای آشغان باقی مانده است البته اگر هیچ قدمی در هیچ راهی بر نداری حق داری باور کنی که دنیا به آخر رسیده است و دیگر اثر هیچ شعار عاشقانه در کوچه های زشت شهرهای زشت ما نمی پیچت. حق داری مادر میگوید روز جمعه اوقاتتان را تلخ نکنید این تصویرنمای بیکارتان را بگیرید شاید تصادفا چیزی برای دیدن داشته باشد من دیگر نمیگویم مادر را باش چون ممکن است واقعا هم تصویرنمای ما به تصادف چیزی برای دیدن داشته باشد اصل اما هنوز رها نکرده است بد پیله است که خدا می داند. آهای دختر بیا اینجا شعارهای عاشقانه از اندیشه های عاشقانه برمیخیزند، نه از فرصتهای مصرف مانده و هیچ چیز در هیچ موقعیتی پرواز اندیشه را محدود نمی کند به همین دلیل است که ستمگران مستبد و نوکرانشان هرگز نتوانستند جلوی شاعر شدن آدم ها را بگیرند یا نقاش شدنشان را یا موسیقیدان. من این سخن را باور دارم که انسان حتی در یک زندان انفرادی تنگ و تاریک نیز میتواند برای خود زندگی نامحدودی به وجود بیاورد. پسرم جرأت نمی کند از مادرش درباره زندان بپرسد. این است که میگوید پدر؟ در زندان تو نامحدود بودی؟ هیچ کلمه ای به قدر نامحدود وضعیت مرا در سالهای زندان به حس نمیرساند. آنجا من در سفر بسیار طولانی خود با هیچ چیز برخورد نمیکردم. کسانی نبودند که پیادم کنند به تیغم بزنند استخوان‌هایم را خرد کنند دشت دشت همیشه بود جاده تا بی نهایت جاده بود جنگل تا ابد جنگل پشت هر یعس موقت امیدی پایدار پشت هر قله قله‌ای من بالاتر از دماوند و بالاتر از اورست هم رفتم و باز بود که بروم و همانجا بود که نوشتم از دیوارهای سخت عمود مرمرین بالا رفتیم بر سنگ سطح دریاها قدم گذاشتیم حلاج هم از همین معبر اندیشه های رفته بود باز سفری در درون فشرده ترین مه مصنوعی تو وقتی بدانی که رؤیا فقط رؤیاست دیگر هرگز در مه قرق نمی شوی. مه زمانی ظهور می کند و چیره می شود که ارتباط تو با واقعیات عینی و ملموس به کلی از میان برود بیشان آن چیزهایی که امروز می و می‌سازم محصول همان سال هاست. من میدانستم که در سفری ذهنی هستم اما جز آن لایتناهی چیزی در دست رسم نبود بیرون بودن از مه به معنای آن نیست که یک سر اسیر واقعیات ملموس باشیم ملال خاطرت از چیست اصل؟ از سلطه اینیات کران پذیر؟ پس نگذاریم بیکرانگی روح اسیر عین یاد شود رؤیا مکمل روزمرگی است و بخش آفریننده آن میگویید آنچه امروز مینویسید محصول سالهای زندان است آیا این به معنای تکیه کردن به خاطر نیست ابدا من از مجموعه تجربه های ماندگار ذهنی بهره میگیرم پدر آیا عشق اگر چیزی از تن نخواهد یک تجربه ماندگار ذهنی نیست؟ تخیل خالص، جنون مجنون لیلی من از تو هیچ زیانی ندیدم زیرا که تو چکیده ای از خاطر منی زیرا که من زخیش تو را آفریدم سپانلو اولین که چرا عشق به دیگری چیزی از تن نخواهد؟ استاد من فروزان فرمی فرمود دونیمه یک سیب اگر بخواهند کاملا یکی شوند، باید که هیچ ای بین خود باقی نگذارند. دومیم که عشق، است دلپسند از عین و ذهن که هر دو متعلق به روزمرگی هاست. عشق حذف کامل فاصله را درخواست می کند، اما این به مفهوم لزوم شباهت میان دونیمه سیب نیست. عشق، نافی شباهت است، شباهت پایان عشق اصل ناپیدا با صدای بلند میگوید. گیل مرد، رؤیا اوژن را خبر کن تا اگر وقت دارند چهارشنبه عصر یک سر اینجا باشند تا روی ترهای تازمان کار کنیم به استاد احسایی هم تلفن کن و خواهش که اگر می توانند یک شب سری به ما بزنند و این چند قطعه قدیمی را که خریده ایم شناسایی کنند مادر میگوید وقتی اینطور به فریاد حرف میزنید، انگار که لباسهای زیرتان را روی بند رختی که همه می پهن کرده اید خوب نیست، فکر همسایه هایتان هم باشید، آن وقتها همسایه به داد همسایه می رسید، اما صدای همسایه را نمیشنید. حتی زاو داد نمیکشید. از آن می تا همه را خبر کنند و به دعا وادارند. همسایه باید اطر گلهایش به خانه همسایه برود. نقیل و قال و صدایش. اصل میآید و میگوید، معذرت میخواهم دیگر صدا از این خانه بیرون نخواهد رفت. تو پذیرفتی اصل. چه آسان پذیرفتی. و ما عاقبت یاد گرفتیم که حرفهای خودمان را فقط برای خودمان بزنید. با کمترین ارتفاع هیچ چیز همچون صدایی که به خانه همسایه می رود همسایه را از سستی بنای خانه ما و از واماندگی های سوز ما آگاه نمی کند فریاد مثل گرد زغال روی اشیاء خانه می و زندگی را کدر و بدرنگ می کند آشق زمزمه می کند فریاد نمی کشد. در گوشم زمزمه کن تا عطوفت صدایت را حس کنم فریاد نکش تا خشونتش را باز می آی و آرام می گویی به فریدون و فریبرز و مهدی زنگ بزن و مقدمات برنامه دو سفر سه روزه را فراهم کن تقویم تعطیل های به هم چسبنده چقدر شیرینند